داستان سوم پیش از جنگ با اسکی جینی منوکس پنج صبح شنبه پیاپی توی زمین های ایست ساید با سلنا گراف هم کلاسش در مدرسه خانم بیس تنیس بازی کرده بود جینی هرچند سلنا را ظاهرن جلفترین دختر مدرسه بیس میدانست. مدرسه‌ای که پر از دخترهای جلف بود اما در عین حال کسی را هم ندیده بود که مثل او قوتی های توپ تنیس با خودش بیاورد. پدر سلنا ظاهران آنها را درست می کرد. یک شب موقع شام، جینی برای سرگرمی خانوادش میز شام خانواده گراف را مجسم کرده بود که پیش خدمت تمام ایاری هر بار در طرف چپ یکی از افراد خانواده می و به جای یک لیوان آب گوجه فرنگی یک قوطی توپ تنیس تارف می کند. چیزی که جینی را بی ناراحت می کرد رساندن سلنا بود به خانش بعد از هر بازی تنیس و پرداخت کرایه تاکسی او به خصوص که انتخاب تاکسی به جای اتوبوس به پیشنهاد سلنا بود اما روز شنبه پنجم همین که تاکسی توی خیابان یورک راه شمال را در پیش گرفت جینی ناگهان در دلش را باز کرد ببین سلنا سلنا که دستش را دراز کرده بود و روی کف تاکسی دنبال چیزی می گشت پرسید، چی؟ و ناله کنان گفت روکش راکتم گم شده با آنکه هوای گرم ماه اوت بود هر دو دختر شلوارک به پا مانتو پوشیده بودند جینی گفت توی جیبت گذاشتیش ببین گوش کن آی خدایا خیالمو راحت کردی جینی که در بند حقشناسی سلنا نبود گفت گوش کن چیه؟ جینی تصمیم گرفت که دلش را خالی کند تاکسی دیگر به خیابان سلنا رسیده بود. گفت راستش دوست ندارم هم امروز پرداخت تمومه کرایه به من تحمیل بشه. من که میلیونر نیستم. خودت خبر داری؟ سلنا ابتدا چارچشمی به او نگاه کرد. سپس رنجیده و معصومانه گفت مگه من دانگ خودم رو نمیدم؟ جینی سریح گفت خیر شنبه اول دانگ خودت رو دادی؟ الان یه ماه میشه. از اون وقت حالا یه بارم ندادی. من ناخن خوش نیستم اما آخه برای مخارج زندگیم هفته چهار دلار و نیم بیشتر ندارم اون وقت بیام و سلنا با اوقات تلخی گفت مگه من هر بار توپ نمیارم جینی که گایی حس میکرد دش نمیخواهد سر به تن سلنا باشد گفت آخه اونا رو که پدرت درست میکنه انگار برای تا که خرجی ندارن این منم که باید پول دونه دونه سلنا به صدای بلند با قیافه حق به جانب برای اینکه دست پیش را گرفته باشد گفت باشه باشه, باشه, باشه با ناراحتی جیبهای مانتویش را گشت و به سردی گفت من فقط سی و پنج سنت دارم کافیه خیر متاسفم باید بگم یه دلار و, و پنج سنت از سر کار من این همه مدت حساب دونه دونه باید برم طبقه بالا از مادرم بگیرم تا دوشنبه نمیتونی صبر کنی اگه رضایت بدی همراه خودم میارم میدون بازی سلنا با این حرف می‌خواست بگوید که به بخشش نیازی ندارد. جینی گفت: خیر، امشب می‌خوام برم سینما، لازم دارم. دخترها در سکوتی که بوی دشمنی می‌داد، از دو پنجره روبروی هم بیرون را نگاه کردند تا اینکه تاکسی جلوی آپارتمان سلنا ایستاد. آن وقت سلنا که طرف پیاده رو نشسته بود، پیاده شد. در را عمدن بازگذاشت و مثل هنرپیشه های مشهور، چابک و توی ساختمان رفت. جینی که برافروخته شده بود کرایه را پرداخت. سپس لوازم تنیس، راکت، هوی دستی و کلاه آفتابی را جمع کرد و دنبال سلنا رفت. جینی با آنکه 15 سال داشت، قدش به یک متر و هفتاد می رسید و کفش تنیس شماره نه بزرگ پاپوشیده بود. قدم به راه رو که می گذاشت زشتی کفش‌های تخ‌لاستیکی و خودنمایانش حالتی تحدید آمیز به او داده بود. این بود که سلنا بهتر دید دستگاه طبقه نمایی بالای آسانسور را تماشا کند. جینی که شلنگ انداز به طرف آسانسور می رفت گفت حالا یه دلار و نوت سنت به من بده کاری. سلنا رویش را رو برگرداند و گفت شاید دلت خونک بشه اگه بهت بگم مادرم خیلی ناخوشه. چش هست. راسته سینه پهلو کرده و اگه خیال می کنی می برای پول ناراحتش می سلنا این جمله ناتمام را با اطمینان تمام به خودش ادا کرد. جینی از این خبر دروغ یا راست کمی جا خورد اما نه آنقدر که متأثر شود. گفت من که پولو به اون ندادم و به دنبال سلنا توی آسانسور رفت. وقتی که سلنا زنگ در آپارتمان را زد در به رویشان باز شد یعنی کلفت سیاه پوستی که ظاهرا با سلنا ای نداشت در را پیش کشید و نیمه باز رها کرد. جینی لوازم تنیسش رو روی صندلی توی راه رو انداخت و دنبال سلنا رفت. سلنا توی اتاق نشیمن رویش را رو برگرداند و گفت خواهش میکنم همینجا بمون. شاید مجبور بشم مادرم از خواب بیدار کنم. جینی گفت باشه و خودش رو روی کاناپ انداخت. سلنا گفت من هیچ وقت خدا گمون نمیکردم تو اینقدر لجوج باشی کلمه لجوج را از این نظر به زبان آورد که خشمین شده بود اما جرأت نکرد با تاکید ادا کند جینی گفت اینطور خیال کن و مجله ووگ را جلوی صورتش گرفت و آن را به همان حال نگه داشت تا سلنا از اتاق بیرون رفت سپس سر جایش روی رادیو گذاشت اطراف اتاق را نگاه کرد و در زن اساس را دوباره چید چراغ‌های رومیزی را بیرون انداخت و گل‌های مصنوعی را جابجا کرد اتاق به گمانش روی هم رفته زشت بود. لوازمش گران اما جلف بود. ناگهان صدای مردانه از قسمت دیگر آپارتمان بلند شد. اریک، تویی؟ جینی حد که صدای برادر سلناست که هیچ وقت او را ندیده است. پای درازش را روی پایش انداخت. لبه مانتویش را روی زانوهایش کشید و منتظر ماند. جوانی عینک زده و پیژامه پوشیده، بدون دمپایی با دهن باز به تاخت وارد اتاق شد. گفت ببخشید به مقدسات گمون کردم اریکه و با حیکل بی تناسبش بیان که درنگ کند اتاق را پیمود و در آن حال چیزی را چسبیده به سینه لاغرش تکان تکان میداد. آن وقت در طرف دیگر کاناپه نشست و به صدای نسبتاً بلند گفت الان انگشت ساب مردم و بریدم و بیان که از بودن جینی در آنجا تعجب کند پرسید هیچ وقت شده انگشت تو ببوری؟ جوری که به استخون برسه؟ در صدای جیغ او به راستی التماس میشد. میشد انگار جینی میتوانست توانست کاری کند که او از زحمت زخبندی راحت شود. جینی به او خیره شد و گفت بله باریدم اما نه اونطور که به استخون برسه. او به نظر جینی بیریخترین پسر یا مردی بود تشخیص این دو از هم دشوار بود که در عمرش دیده بود. موهایش از خوابیدن به هم ریخته بود. ریش بور و کم توپش یکی دو روز بود اصلاح نشده بود و قیافش خنده آور بود. پرسید چطور شد برید؟ او که سرش را پایین انداخته بود و با دهان بیروح و باز به انگشت زخمیش خیره شده بود گفت چی؟ چطور شد برید؟ گفت چه می دونم خبر مرگم؟ لهن صدایش نشان میداد که جوابی که از سر ناچاری به سؤال او میدهد مبهم است. تو سطل آشخال بی شده که پر از تیغ صورت تراشی بود داشتم دنبال چیزی میگشتم. جینی پرسید، شما برادر سلنا این؟ آره، به مقدسات این خون ریزی آخرش دخل منو میاره. همین جا بمون، شاید به تزدیق خونی، زهرماری چیزی احتیاج پیدا کنم. چیزی روش گذاشتین؟ برادر سلنا، دست زخمیش را از روی سیناش کمی جلو برد. روی زخم را جلوی سلنا باز کرد و گفت فقط کاغذ توالت بیستاب شده تا خونش و بند بیاره. مثل موقع ریش ریشتراشیدن که صورت آدم میباره دوباره جینی را نگاه کرد و پرسید تو کی هستی؟ دوست اون ناکسی؟ هم کلاسیم. اهه؟ اسمت چیه؟ ویرجینیا منوکس. برادر سلنا که با عینک به او چشم دوخته بود گفت تو جینی هستی؟ جینی منوکس توی؟ جینی که پایش را رو از روی پایش برمیداشت داشت گفت بله برادر سلنا دوباره به انگشتش خیره شد که ظاهرا توی آن اتاق تنها چیزی بود که میتوانست خوب ببیند و با بیغرزی گفت من خواهر تو شناسم تا به خواهی افاده داره جینی سرش را جلو آورد. پرسید. چی داره؟ گوشت که شنید. افاده نداره. برادر سلنا گفت. خیلی خوب هم داره. میگم افاده نداره. خیلی خوب هم داره. اصلا لنگه نداره. میون آدمای های ای لنگه نداره. جینی او را تماشا کرد که روی زخم را پس زد و از زیر لایه های زخیم توالت انگشتش را نگاه کرد. شما بی خود میگین که خواهر منو میشناسین. خیلی خوب هم میشناسم. جینی گفت اگه راست میگین اسمش چیه؟ اسم کوچیکش چیه؟ جون جون افاده ای. جینی ساکت شد ناگهان پرسید چه قیافه ای داره؟ برادر سلنا حرفی نزد جینی دوباره گفت چه قیافه ای داره؟ برادر سلنا گفت اگه نصف اون خوشگلی رو که به خیال خودش داره داشت حال و روزش سکه بود جینی که پیش خود فکر کرد بهترین نشانی را داده است گفت هیچ نشنیدم اسمی از شما ببره از این خبر پکر شدم درسته حسابی پکر شدم جینی که به او نگاه می کرد گفت به برسونم که نامزد شده ماه آینده عروسی می کنه. برادر سلنا سرش را بلند کرد و پرسید با کی؟ جینی از فرصت استفاده کرد و صورت او را خوب برانداز کرد گفت شما نمیش نسیش برادر سلنا باز به کار بندی سرگرم شد و گفت دلم به حال اون مادر مرده می سوزه جینی پوز خندی زد هنوز هم خون ریزی داره فکر می کنی باید چیزی روش بذارم چی خوبه روش بذارم مرکرکرون فایده نداره جینی گفت تنتور یوت بهتره و چون حس کرد که در چنین این موقعیتی بیش از اندازه رعایت ادب را کرده است گفت مردشوی کرومو ببرن شرا؟ مرکورکوروم چه بدی داره؟ یعنی به درد اینجور زخمانه نمیخوره همین شما تنتور یود لازم دارین او جینی را نگاه کرد و گفت آخه خیلی میسوزه نمیدونی سوزشش پدر آدمو در میاره جینی گفت میسوزونه اما جون آدمو که نمیگیره برادر سلنا ظاهرا بیان که از لحن جینی رنجیده باشد، دوباره انگشتش را نگاه کرد و گفت آخه من خوش ندارم جاییم بسوزه. کی دوست داره؟ برادر سلنا با سر تصدیق کرد و گفت راست میگی. جینی مدت یک دقیقهی براندازش کرد و ناگهان گفت چقدر بهش دست میزنی شما هم؟ برادر سلنا که انگار برق گرفته باشدش، دست سالمش را پس گشید. کمی راستتر نشست. یا بهتر گفته شود کمی از قوزش کم کرد و به چیزی در آن سوی اتاق خیره شد. چهری بد را حالتی خوابالود پوشاند. ناخون انگشت نشانه دست سالمش را میان شکاف های جلو برد. ریزه غذا بیرون آورد. رویش را رو به جینی کرد و پرسید. چیزی خوردی؟ چی؟ نهار خوردی؟ جینی سرش را تکان داد و گفت. من خونه نهار می مادرم همیشه وقتی میرسم خونه ناهارم آماده کرده. توی اتاقم نصف ساندویچ مرغ دارم. میل داری؟ دست بهش نزدم. نه، متشکرم نمیخوام. تو الان بازی تنیس اومدی. به مقدسات میدونم گرسنه‌ای. جینی رو روی پایش انداخت و گفت: گرسنم که هست. اما راستش همیشه وقتی میرسم خونه مادرم ناهارم آماده کرده. اگه چیزی بخورم از کوله در میره باور کنین. برادر سلنا ظاهرا این توجیه را پذیرفت. آن وقت سرتکان داد و به طرف دیگر نگاه کرد. اما ناگهان سرش را برگرداند و گفت بایی لیوان شیر چطوری؟ نه متشکرم، متشکرم میل ندارم. برادر سلنا خم شد و با بیخیالی گوزک لخت پایش را خاراند و پرسید اسم این بابایی که میخواد باش عروسی کنه چیه؟ جینی گفت جونو میگی؟ دیکفنر برادر سلنا به خاراندن قوزکش ادامه داد. جینی گفت توی نیروی دریایی سرناوبانه نه بابا. جینی زیر لب خندید و او را که سرگرم خاراندن قوزکش بود تماشا می کرد. برادر سلنا به خاراندن پایش ادامه داد. تا جایش قرمز شد. اما وقتی شروع کرد کورک کوچک ساق پایش را با ناخان جدا کند. جینی رویش را برگرداند. جینی پرسید شما از کجا با جان آشنا شدین؟ هیچ وقت شما را تو خونمون یا جایی ندیدم من تو لجند درمال شما پا نزاشتم جینی لامتاکام حرفی نزد تا شاید موضوع عوض شود اما چیزی به نظرش نرسید پرسید پس کجا با هم آشنا شدین؟ توی مهمونی توی مهمونی؟ کی؟ یادم که نیست کریسمس چهلو دو بود و از جیب بالای پیجامش با دو انگشت سیگاری بیرون آورد که ظاهرش نشان میداد رویش خابیده است گفت اون کبریتو برد کن اینجا ببینم جینی قوطی کبریت را رو از روی میز کنارش برداشت و به او داد او بی آنکه انهنای سیگار را راست کند روشنش کرد سپس چوب کبریت خاموش را توی قوطی گذاشت سرش را که عقب می برد رفته رفته انبوهی دود از دهانش بیرون داد سپس دودها را از بینی فرو برد و به ترتیب به شیوه فرانسوی ها به سیگار کشیدن ادامه داد. به احتمال زیاد در بند خود نمایی نبود. بلکه کار جوانهایی را میکرد که گهگاه در تنهایی سعی میکنند با دست چپ صورتشان را بتراشند. جینی پرسید. چرا میگین جون افاده داره؟ معلومه. برای داره دیگه. چراشو دیگه نمیدونم؟ آخه میخوام بدونم از کجا میگین؟ برادر سلنا با خستگی رویش را رو به او کرد و گفت گوش کن، من برداشتم هشتا نامه بهش نفشتم هشتا؟ حتی به یکیش جواب نداد جینی با دودلی گفت خب شاید کار داشته آره کار داشته خبر مرگش فرصت سرخاروندن نداشته جینی فرسید شما مجبورین انقدر بد و بیرا بگین؟ خوب غلطی میکنم جینی زیر لب خندید و پرسید اصلا چند وقته میشناسینش خیلی وقته یعنی میخوام بگم هیچ وقت بهش تلفن کردین میخوام بگم هیچ وقت نشده بهش تلفن کنین نه به هیچ چیزی نشنیده آخه اگه هیچ وقت بهش تلفن نکردین به مقدسات نمیتونستم جینی گفت چرا نمیتونستین تو نیویورک نبودم اه کجا بودین؟ من؟ اوهایو بودم ببینم، دانشکده می رفتین؟ خیر، اونجا رو که ول کردم آهان، تو ارتش بودین؟ خیر و با همون دستی که سیگار را گرفته بود روی طرف چپ زد و گفت ساب مرده جینی گفت قلبتون رو میگین چشه خودم هم نمیدونم چه مرگشه. بچه که بودم روماتیست داشتم. درد ساب مردش منو. خیال ندارین سیگارو کنار بذارین؟ یعنی میگم خیال ندارین دیگه سیگار نکشین؟ دکترها میگن؟ او گفت ویلکوم بابا. اینا از این چرندیات خیلی میگن. جینی دنبال حرف را رها کرد و آرام پرسید. توی اوهایو چیکار میکردین؟ من؟ توی کارخونه تیار سازی لجن در مال کار می کردم. جینی گفت جدی؟ از این کار خوشتون میومد؟ برادر سلنا ادای او را در آورد و گفت از این کار خوشتون میومد؟ من آشقش بودم من برای تیاره می میرم. هیچ چیز مثل تیاره نیست جینی در اینجا چنان مجذوب شده بود که چیزی به دل نگرفت گفت چند وقت اونجا کار کردین؟ تو کارخونه هواپیما سازی و میگم به مقدسات یادم نیست سی و هفت ماه از جا بلند شد و قدم زنان به کنار پنجره رفت به خیابان نگاه کرد پشتش را با شست خاراند و گفت نگاهشون کن اه مقای کثافتو جینی گفت کیا رو میگین؟ نمیدونم اما رو میگم جینی گفت اگه انگشتتون را اونطور سر پایین بگیریم بازم خون ریزی میکنه مرد حرفش را گوش داد پای چپش را رو روی رف پنجره گذاشت و دست زخمیش رو روی رانش تکیه داد. و همچنان به خیابان خیره شد و گفت دارم میرن توی اداره لجندرمال مال سربازگیری. دفعه وقت قراره با اسکیموها به جنگیم. خبر داری؟ جینی گفت با کیا؟ با اسکیموها دیگه. تو رو به مقدسات باز کنون تو با اسکیموها چرا؟ برادر سلنا گفت چرا نمیدونم. ما از کجا علتشو بدونم خبرم مرگم اینبار قرار همه پیرپاتالا راه بیافتن برن پیرپاتالای پاتالای 50 ساله هیچ آدمی حق نداره بره جز آدمای پنجا شست ساله فقط ساعت کارشون رو کم کن دیگه حرفی ندارن عجب دنیایی جینی بیان که منظور خاصی داشته باشد گفت شما یه نفر که مجبور نیستین برین و پیش از آنکه حرفش تمام شود پیبرد که حرف نابجایی زده است مرد به تندی گفت میدونم و پایش را از رفع پنجره پایین گذاشت پنجره را کمی بالا برد و سیگارش رو به خیابان دونیم کرد کارش که کنار پنجره تمام شد برگشت و گفت ببینم یه کاری برای من میکنی؟ این بابا که وارد شد بهش بگو من یکی دو ثانیه دیگه حاضر میشم میرم ریشمو بتراشم تراشم باشه جینی سرتکان داد به سلنا بگم تو کاری چیزی باش داری؟ خبر داره یا نه؟ جینی گفت آره خبر داره که من اینجا عجله ندارم متشکرم. برادر سلنا سرش را تکان داد سپس آخرین نگاه طولانی را هم به انگشت زخمیش انداخت تا ببیند میتواند سفر به اتاقش را شروع کند یا نه چرا چسب زخم روش نمیذارین؟ چسب زخمی چیزی دارین؟ مرد گفت نه بی خیالش و از اتاق بیرون رفت چند ثانیه بعد برگشت و نصفه ساندویچ را با خودش آورد بگی بخور بدک نیست راستش من اصلا تو رو به مقدسات بگیر زهری چیزی بهش نزدم جینی نصف ساندویچ را گرفت و گفت باشه خیلی متشکرم مرد که بالای سرش ایستاده بود و نگاهش میکرد گفت ساندویچ مرغه دیشب از یه مغزه فروشی لجند درمال خریدم ظاهرش که خیلی خوبه خب پس معطلش نکن جینی گازی به آن زد خوبه ها؟ جینی لقمه را به سختی بلعید و گفت خیلی برادر سلنا سرش را تکان داد با پریشان حواسی پیرامون اتاق را نگاه کرد وسط سینهاش را خاراند و گفت خب گمونم بهتر منم برم لباس بپوشم اخدایا زنگ میزنه تو همینجا نشسته باش و رفت